سفم. ساعت سه اصر، هنگام صرف چای، وقتی شیگه ماتسو به آشپسخانه رفت، از جنگل کاج پایین، جیجیرک بهاری اولین آواز امثالشان را سر دادند. همسر از کو در حال کوبیدن راش گندم گفت، وقتی یاد داشت های بمباران اتمی را به کتابخانه اهدا کنید، برای همیشه آنجا نگهداری می شود؟ درست است. بله، از طرف مدیر مدرسه درخواست شده. این یاد تاریخ زندگی من است. با این حساب خیلی مهم هستند. نظر شما چیست که به جای جوهر با مرکب آنها را رو نویسی کنیم. خطوط نوشته شده با جوهر بعد سالها به تدریج کمرنگ می شوند. احمقانه است. کمی پرید رنگ می شوند، اما به آن شدت. اما نامه های نوشته شده با جوهر در اوایل دوره میجی، قهوهی و کمرنگ نامه هایی که پدر بزرگ از توکیو دریافت کرد رنگشان قهوه‌ای و بسیار پریده شده. چهی آنها را دیدی؟ حدود بیست سال پیش. روز دوم عروسیمان. مادر در طبقه دوم انبار آنها را به من نشان داد. تاریخ عروسیمان در تقویم قدیم روز اول ماه هفتم بود. پس روز دوم ماه هفتم آنها را دیدم. کاملا روز و ماه را به خاطر دارم. بسیار خوب. برویم ببینیم قهوه‌ای شده یا نه. من را به طبقه دوم انبار ببر. شیگه ماتسوچه را قوه آورد و بدون اینکه راش گندم کوبیده را بخورد همراه شیگه کو داخل انبار شد. طبقه پایین انبار به دو قسمت کف سیمانی و محل گذاشتن صندوق های برنج تقسیم می شد که دری از الوار زخیم داشت. قبل از رها کردن زمین های کشاورزی کیسه های برنج در محل صندوق ها تا ارتفاع زیادی روی همان انباشته میشد. در سال هم که برنج سالیانه سهم مالک زیاد بود، آن را در کف سیمانی انبار روی هم می ریختند. طبقه دوم با چوب کاج سرخ ژاپنی تخت پوش شده، اما موریانه زده بود. زیر قفسه های کشویی که درون آن جعبه هایی با نقاشی های بدلی چیده شده بود، چندین جعبه مستطیلی بلند به ردیف گذاشته شده بودند. جعبه مستطیلی بلندی که روی در آن نشان خانوادگی نقش بسته بود، ظاهرن ای بود که پدر بزرگ هنگام ازدواج با خدا ورده بود. درون جعبه یا داشتهای مانده از پدر بزرگ و کتابهای او ریخته شده بود. قبل از این شیگه ماتسو آفتاب دادن وسایل داخل انبار را بر عهده مادرش گذاشته بود. اما وقتی مادرش فوت کرد، این وظیفه بر دوش شیگه کو قرار نامه ای که برای پدر بزرگ بسیار پا ارزش بود، درون سندوخچه داخل آن جعبه مستطیلی شکل بلند قرار دارد. شیگکو در جعبه را برداشت و زیر نور چراق و از داخل بسته یک کاغذ بیرون کشید. نخش را باز کرد و از میان نامه های بخشداری و فرمانداری، گواهی عضویت در انجامن سریب سرخ و سایر نامه ها و کاغذ ها پاکت مورد نظر را پیدا کرد. فرستنده آن ایچیکی از شهر سوروگادای در توکیو بود و در قسمت گیرنده هم نام آقای سونودا در شیروشیدسای اوکایاما نوشته شده بود که میبایست آن را به پدر بزرگ شیگه مدسو برساند تاریخ آن هم روز سعد ماه یازده همه سال ششم دوره میجی برابر با سال 1874 میلادی بود با استناد به حرفهای مادرم سال ششم دوره میجی، نخستین بار نامه به این روستا آمد. با واسطه کردن شخصی در فکویاما یا اوکایاما و بعد با دادن پیغام نامه از طریق آنجا ارسال میشد. سال ششم میجی، سالی است که صنعت پست دولتی در تمام شهرهای مهم کشور گسترش پیدا کرد. این نامه برای پدربازار خیلی مهم بود. اینها هم داخلش هست. داخل پاکت برگ تنباکو گذاشته شده بود. البته ترد و خشک و ای شده بودند. در سال ششم میجی تنباکو هنوز انحصاری نشده بود پس کشاورزان عادی هم آن را کشت می کردند و مانند گل آزرگون برای دور کردن آفات و حشرات به کار می بردند. به همین دلیل درون سندخچه هم ده تا بیست برگ تنباکو لای نوشته ها گذاشته بودند. حیف خیلی خوب بود اگر این برگهای های تنباکو را زمان کم بوده توتون دوره جنگ می دیدن. تو چرا قضیه این برک های تنباکو رو همان زمان به من نگفتی؟ چون حتما نیکوتینش از بین رفته است. اما اگر هم تنباکوی سالمی باشد، کوبیدن و کشیدنش خلاف قانون انحصار فروش بود. بله همینطور است. تو هم مانند این برک های تنباکو هستی. هنوز تورت هستند. بله، اینجوری است. طبقه دوم انبار خاکالود و کم نور بود و همه چیز آنجا خشک شده. درست مانند اینکه آب بدن آدمی را به تدریج بمکند تا آن حد موریان زده بود که اگر آهسته راه نمی امکان داشت الوار کف کنده شوند شیگماتسو نامه را باز کرد و نور چرا قوه را بران انداخت با قلمو و ماهرانه نوشته شده بود اما نوشته هایش به شکل ترحومنگی زیب پریده و به رنگ قهوهی خوشک درامده بودند جناب مستطاب همان گونه که مستحضر هستید پارسال هنگام بازدید از روستای کوباتاکه و محل شما این جانب مقداری تخم درخت کنپناشی تراسا کردم بسیار مننت پذیر خواهم بود اگر آنها را به جناب آقای مراتا والی سابق کوباتاکه برسانید تا در عزیمت این بارشان به توکیو همراه بیاورند به هر حال علاوه بر کاشت آزمایشی آنها همان گونه که آن زمان عرض شد تصمیم بر این است که مناسب بودن یا نبودن آنها به عنوان درخت معابر بررسی شود. این عریضه را با توجه به امکانات این زمانه با جوهر غربی مرقوم داشتم. والی سابق که حتی بعد از اصلاحات هم تا سال سوم میجی برابر با سال 1871 میلادی یعنی زمان استقرار دهداری در امنیت داخلی منطقه تأثیر بود. گفته میشود او در سال ششم میجی خانش را رها کرده و یک بار به توکیو نقل مکان کرده بود در حال حاضر خانه والی ویران شده و نصف اتاق مکتوبات در پشتی و انبار باقی مانده و برخی بقایای امارت هم قسمتی از مدرسه ابتدایی شده بود شخصی به نام ایچیکی از سروگادای توکیو ظاهرا به عنوان بازرس یا یکی از همراهان با فرستادهی حکومت جدید میجی به مقر والی کاباتاک سرزده بود. احتمالا همان زمان درخت کنپاناشی را دیده و با پدر بزرگ شیگاماتسو قرار و مداری مانند آنچه در نام آمده گذاشته بودند. گفته میشود در خانه شیگاماتسو پنج اصله درخت بزرگ کنپاناشی تا زمان جنگ چین و ژاپن وجود داشته است. شاخ و برگ درخت کنپاناشی بسیار عالی است. با دیدن پنج اصله از این درخت که کنار هم رویده بودند، شاید ایچیکی اندیشیده که این درخت برای خیابانهای توکیو مناسب خواهد بود. پس احتمالاً او پدر بزرگ شیگه ماتسورا به محل اقامتش فراخوانده و از او خواسته که هنگام عزیمت والی به توکیو مقداری از تخم این درخت را برای او ارسال کند. در بیان دلیل اهمیت نامه برای پدر شاید بتوان حد زد که در قرار و مدارشان، پدر بزرگ خواسته بوده که برایش نامه‌ای با جوهر غربی بنویسند و بفرستند. شاید هم این درست نباشد و پدر بزرگ شیگماتسو با دیدن ترکیب بدیع درخت معابر فکرهای عجیبی کرده و آن نامه را نگه است. شیگه تصمیم گرفت یا داشتهای بمباران اتمی را با قلمون و مرکب بر کاغذ ژاپنی رونویسی کند. قرار شد قسمتهایی را هم که تا کنون با خود نویز، رو رونویسی شده بود دوباره با قلمو از نو بنویسد بسیار تشنه بودم دلم میخواست آب بنوشم دیگر نمی‌توانستم تحمل کنم وقتی شیر کنار خیابان را باز کردم چنان آب جوشی بیرون زد که بخار از آن بلند می‌شد نمی‌شد لبت را بر شیر بگذاری و نه داشت با دست آب را بنوشی وقتی این صحنه یادش آمد آن را با قلمو نوشت در سمت شرقی ایستگاه محبتی ایزدکده یکوگاوا قرار دارد که عمارت اصلی ایزدکده جز ستونی کاملا فرو ریخته بود. عبادتگاه تام و تمام از بین رفته و مهرابی از آوار شده بود. جماعتی که در این محوته رفت آمد می کردند همه از سرتاپها با چیزی مثل خاکستر یا گرد و غبار پوشیده شده بودند. یک نفر هم نبود که خونالود نباشد. از سر، صورت، دست و سینه افراد برهنه همچنین از کتف، ران یا از جای دیگرشان خونجاری بود. زنی بود که گونه هایش بسیار ورم کرده و مانند کیسا آویزان شده بود. چون ارواح دو دستش جلو گرفته بود و راه می رفت. مردی بدون هیچ لباسی انگار که وارد صحنه هممام عمومی شود در حالی که به سبکی خود را جمع می کرد راه می رفت. زنی با پیراهنی نازک در حالی که جیغ می کشید از روی درماندگی میدوید زنی با نوزادی در بغل فریاد میزد آب آب بدهید و در فاصله فریادهایش به چشم نوزاد فوت می کرد چشم نوزاد از خاکستر یا چیزی دیگر پر شده بود مردی با آخرین توان فریاد میکشید زنان و کودکان گریانی میدویدند کسانی از درد میان مردی کنار خیابان نشسته دو دستش را با آسمان دراز کرده بود و با خشونت تکان میداد. زوج سالمندی میان کوهی از سفال کف دستها را بر هم نهاده، چشمها را بسته بودند و در دل دعا می کردند. مرد نیمه اوریانی سراسیمه جلو آمد به آن زوج سالمند برخورد با گفتن احمقها دیوانه ها و دهنی کرد و رفت. مردی با شلوار سفید چهار دست و پا آرام آرام پیش می‌رفت در حالی که های های اینها این ها بود که حین پیاده آمدن از مسیر بین ایستگاه ایو تا پارک میتکی داخل یک شهرک دیدم رفت آمد مانند ازدهام جماعت مقابل ایستگاه در ساعت اوج شلوغی صبح و عصر بود تنها به سمتی که همه حرکت می‌کردند پیش می‌رفت آن وقت از میان صداهای مختلف توانستم صدای جیغی را بشنوم که با گفتن آقای شیزوما آقای شیزوما صدایم می زد. هی، hey, کجای, کجایی، کجایی؟ به سمتی که صدا میآمد حرکت کردم. زمانی که داشتم افراد را کنار میزدم کسی دست مرا چنگ زد و گرفت. آقای شیزوما، خوب شد دیدم نمیدانم از کجا و چگونه آمده بود. اما همان رئیس زن کارخانه قلموی غلموی تاکاهاشی بود که مدتی قبل دیده بودمش. دستم را گرفته بود و میلرزید. برای فرار از ازدهام جمعیت زن را از میان خانه های فرو ریخته کنار را دنبال خود کشیدم. زن با چهره رنگ پریده هنوز داشت میلرزید. آقای شیزوما چی شد؟ آن صدای وحشتناک. بمب بود؟ کجا بود؟ نمیدانم اما به هر حال صدای بود. آقای شیزوما صورتتان به کجا خورده؟ پوستش کنده شده و رنگش عوض شده. درد دارد. باید درد داشته باشد. با دو دست صورتم را لمس کردم. دست چپم کثیف شد. وقتی کف دست هایم را نگاه کردم، روی کف دست چپم چیزهایی شبیه رشته‌های کاغذی آبی و ارغوانی چسبیده بود. دوباره دست کشیدم، باز هم چسبیده بود. خاطرم نمی‌آید صورتم به جایی خورده باشد. خیلی عجیب بود. فکر کردم شاید خاکستر یا قبار آلودش کرده. میخواستم یکبار یک بار دیگر وارسیش کنم که زن مش دستم را گرفت. دست نزن تا زمانی که از دارو استفاده نکرده ای بهتر است به همین حال ولش کنی. اگر دست بزنی میکروپا از دست به آن منتقل خواهند شد. درد خاصی نبود اما احساسی بد در نایی گردن داشتم. از اینکه چیزهایی به گونه چپم هم چسبیده بود احساس بیتابی می کردم. دهانم را گشاد بازو بسته کردم و به پوست صورتم حرکت دادم اما نتیجهش فقط این بود که فهمیدم به گونه چپم چیزی چسبیده است. زن مچه دست چپم را گرفته بود و رها کرد. پس با دست راست به گونه‌ام دست کشیدم تا ببینم چیست. به کف دستم باز رسوب رشته‌رشته‌ای چسبید. آن را به پشت دست چپم مالیدم و نگاه کردم. شبیه مواد به جامانده از سوختن پلاستیک بود و کمی هم حالت خیسی داشت. در تمام اعضای بدنم سرمایه بدی احساس کردم. حس می کردم دور دورو برام خلوت و سوت و کور شده. سرگیجه نداشتم و الان نمیتوانم توانم را شردهم که آن لحظه بر من وارد آمده بود. ناخداگاه جزوه را به یاد آوردم که هواپیماهای دشمن، اوایل یا عواست ماه گذشته ریخته بودند. چیزی نزدیک به این مفهوم در آنها نوشته شده بود. به زودی هدیه کوچک برای شهروندان هیروشیما خواهیم داشت. خودم آن جزوه را ندیدم، اما تاشیرو مهندس پیر کارخانه این مطلب را گفته بود. یا سوکو هم گفت که از همکارش شنیده است. مسئله مهمی است. خانم تاکاهاشی پذیرفتم که مسئله مهمی است. بعد خوب درمانش خواهم کرد. بله، پذیرفتم. چه کار باید بکنیم؟ این وقایع بسیار ناگهانی پیش آمد. نمیدانیم بمباران بود یا چیز دیگر. بنابراین دستمان بسته است. خیلی سخت است. خانم تاکاشی، سر و صورتتان پر از گرد و غبار است. انگار کلاه گیسی از خاکستر سرتان کرده اید. زن سرانجام با دستم را رها کرد و با است موهای سرش را تکاند. چیزی شبیه گرد و غبار یا خاکستر از سر بر شانه‌اش ریخت. بعد صورتش را به چپ و راست و آنها را فوت کرد. فوت کردن نسبت به تکاندن با دست بهتر شرشان را کم می کرد زن به جلو خم شد در حالی که سرش را تکان میداد با دست به موهایش میزد و با دقت فوت می کرد. من هم سرم را تکاندم ذراتی چون خاکستر بعد از ریختن آب بر آتش پایین ریخت. اینجوری خوب نیست خانم تاکهاشی دست نگه دارید دست نگه دارید. بیایید جای آب پیدا کنیم و سر و صورتمان را بشوییم شستم بهتر است. زن حرفم را قبول کرد تمامی خانه آن اطراف ریخته بودند. مخازن آب آتش نشانی که زیر برآمدگی لبه بام ها قرار داشتند زیر دیوار و سفال های خانهها خانه ها مدفون شده بودند وقتی به سمت شیر آبی برگشتیم که پیشتر آب جوش از آن بیرون زده بود شیر باز رها بود بدون اینکه دیگر از آن آب جوش یا اصلا آبی خارج شود فهمیدم شیر مخزنی بود که جلوی مغازه قرار داده بودند ظرف ای را روی پایه‌ای بتنی با سیمان چسبانده و مخزن آب کرده بودند خود مغازه به طور کامل با موج انفجار به نقطه دورتر پرد شده بود رفت آمد افراد کمتر و فریاد زخمی ها هم ضعیفتر شده بود جهتی که بیشتر افراد پیاده به سمت آن در حرکت بودند ظاهرا پارک میتاکی یا اطراف پل فلزی میساسا بود ما هم پیاده به آن سمت حرکت کردیم آوارگانی که کنار ریل راه آهن مار به هم پیوستند مثل زائران کمانو افسانه یا صف مورچه ها بودند کوه میتاکی در پارک میتاکی هم چشمندازی چون ازدهام مورچه ها بر مانجو داشت. هنگام گذشتن از کنار دبستان یکوگاوا مخزن آب آتش نشانی را در گوشه ی حیات مدرسه دیدیم. خانم تااکهاشی که زودتر آن را دیده بود به سمت آن دوید. خواستم بدوم اما کمی که دویدم احساس کردم در گونه چپم، ماهیچه ها پایین و بالا میروند بنابراین آرام راه رفتم در حالی که زمزمه میکردم، باشد باشد برای شستن صورت خواستم عینکم را بردارم که متوجه شدم نیست کلاه هم نبود عینک و کلاهم را انداختم وقتی این را گفتم زن هم به کمر و شانهش دست کشید و با صدای آهسته ای گفت کیفم را انداختم حدود سه هزارین توی کیف بود دفترش پسنداز و مهرم را هم تویش گذاشته بودم بسیار خوب برگردیم دنبالشان بکردیم شاید وقتی آن نور مدور تابید در ایستگاه یک افتاده باشند سه هزار ین پول زیادی است. صورت‌های من را شستیم و با سطلی که آنجا بود بر سر هم آب ریختیم. آقای شیزوما به صورتت دست نزن. حتی قبل از اینکه زن هم اختار دهد به هیچ وجه از دست‌هایم استفاده نکرده بودم. صورت هم را درون آب سطل فرو کردم و با حرکت دادنش به چپاراست آن را شستم. سطر را پر آب، نفسم را حبس و صورتم را درون سطل فرو کردم. بعد در حالی که نفسم را آرام آرام بیرون می دادم، سرم را به چپ و راست تکان دادم. در این حالت، حباب های خارج شده با حسی خوشایند چهرم را نوازش می کردند. تشنه بودم و نمی توانستم خودم را نگه دارم. آب سطر را عوض کردم، سه بار آب غرغره کردم و بعد نوشیدم. از دوران کودکی، بدون اینکه کس از کسی یاد بگیرم. هنگام نوشیدن آب چشمه یا آب چاه جاهای دیگر حتما قبل از نوشیدن سه بار آن را قرقره می کردم. دوستان دوران کودکی هم همه می گفتن که بعد از سه بار قرقره آب می نوشند. این کار فقط به خاطر جلوگیری از خطرات نوشیدن آب نجوشانده نبود بلکه گفته می شد روشی برای عدای احترام به ایزد آب چشمه یا چاه است. رفته آمد خیلی زود کم شده بود. از خیابانی برگشتیم که مدتی قبل در آن بودیم. مجبور شدیم باز وارد ساختمان ایستگاه یوکاگاوا شویم. خانم تاکهاشی که کیف حاوی تمام سرمایهاش را گم کرده بود، با تکیه به من نگران راه میرفت. کیفی به رنگ لابد سیاه است. قسمت فلزی آن هم طلایی رنگ است. خانم تاکهاشی با اینکه مدتی قبل هم این را گفته بود، باز تکرارش کرد. محل افتادنش باید جایی باشد که نخستین ها را کردیم. من هم دوباره مطلبی تکراری گفتم. در ساختمان ایستگاه یک نفر هم نبود. از جایگاه غصه تا سکو چیزهای مختلفی پراکنده بود. کفش، گتا، صندل، کفش کتانی، چتر آفتابی، عرقچین، کت، سبد، کاغذ بسته‌بندی، ظرف نهار و غیره. مانند اتاق رختکن نمایش همه چیزی بود. به خصوص ظرف ناهار تعدادشان از همه بیشتر بود عجیب هم این که محتوای پخش و پلا شده داخل این ظرف ها زیاد به چشم می آمد طبیعی بود که در زمان کمبود غذا همه فکر و ذهنها به خوردن باشد نیگیری که نصفش گندم جوشیده بود سویا سبزیجات توفاله به جامانده از ساختن توفو و غیره که چاشنی بیشتر آنها تروبچه بود دور و بر ریخته بود ظاهرا هرجمج در همه چیز وجود داشت آنجاست. کیفم آنجاست. خانم تاکاشی از سکو به سمت خطوط راه آهن پرید. جایی بود که هنگام تابیدن نور دایره ای در آسمان خانم تاکاشی و ما از ترانوا بیرون افتاده بودیم. درست است. با این حساب عینک هم, هم باید در جایی باشد که اول بار دستو بازدم. همینطور هم بود و عینک کنار ستونی پیدا شد که قبلا آن را بغل کرده بودم. خوشبختانه شیشه هایش نشکسته اما سلولید دور شیشه چپ آن مانند فنر پیچ برداشته بود و فلز وسط آن هم میدرخشید. سلولید به خاطر حرارت آنی کاملا برگشته بود اگر سلولید فنر شده را می کندی، سمت چپ دور شیشه فلزی میشد و سمت راست آن سلولید به عبارتی عینکی لنگه بلنگه خانم تاکاشی کیف را برداشت آمد و در حال جستجوی داخلش گفت خیالم راحت شد. خیلی کمک کردید. خواستم با آستین پیراهن بازم شیشه عینک را پاک کنم اما متوجه شدم دستم آرام آرام می لرزد. لرزش آن به ای بود که خانم تاکاشی هم متوجه آن شد. آقای شیزوما من پاکش می کنم. نه مشکلی نیست. علت لرزش دستم را می دانم. این حرف را زدم و شیشه عینک را با دستی لرزان پاک کرد. دلیلش این است که دشمن زهره چشمش را زیاد کرده است با نوری که اصلاً پدر و مادرش معلوم نیست گونه سمت چپم را سوزند. سمت چپ اینکم را هم همینطور. ترساندن مرموزی است خب این یعنی زهره چشم اما امروز هنوز بمباران هوایی نشده. دشمن آن ظرفهای نهار پخش و پلا شده در آنجا را نمی‌بیند اگر آن نیگیری ها را ببیند آیا فکر نخواهد کرد که دیگر بمباران هوایی لزومی ندارد کار بیهودش را متوقف نخواهد کرد؟ احساسات ما را نخواهد فهمید. آقای شیزوما، حرفهای پیچیده نزن. عینک را روی چشم گذاشتم. در نزدیکی کلاه نظامی لگد مار ای به چشمم خورد. برداشتمش. بسیار شبیه کلاه خودم بود اما مال من نبود. آن را بر سر گذاشتم و همراه با خانم تاکهاشی از ایستگاه خارج شدیم. صورت اترا پانسمان کن. اگر باد بخورد زن این را گفت از بسته کمک‌های اولیه‌ای که بر دوش داشت دستمال سگوشی درآورد و آن را به شکل روسری به صورتم بست وقتی کلاه را هم گذاشتم فقط مقدار کمی از صورتم پوشیده نماند جنس دستی به ما نیامده تصمیم گرفتم عوض نگه داشتن کلاه آن را بیاندازم پس با این فکر که شاید کسی دیگر آن را بر سر بگذارد کلاه را روی سفال دیو شکل خانه ویران گذاشتم بدون هیچ حرفی دو نفری قدم زنان به سمت پارک میتاکی رفتیم. جماعت در حال رفت و آمد خیلی زود کم شده و فقط افراد به شدت زخمی در همان جهت ما سرگردان بودند. کنار خیابان، زنی با ظاهری افسرده ایستاده و از لای انگشتان دست چپش که با آن بازوی راستش را گرفته بود، خونی تیره خارج می شد. نمی توانستم مستقیم نگاهش کنم، صورتم را برگرداندم. در آن لحظه از پشت سر ما نوجوانی به دو جلو آمد و فریاد زد داداش داداش کفش کتانی پوشیده پیراهان نیم آستینی به تن داشت و شلوارش از ساق پا به پایین پاره شده بود داداش منم منم داداش بچه از پشت آمد و مقابل جوانی ایستاد که کلاهی فلزی بر سر داشت جوان هم ایستاد اما با حالت ترس گفت تو کی هستی خانم تاکاشی و من ایستادیم و آنها را نگاه کردیم. صورت نوجوان مانند توپ فوتبال آماس کرده و رنگش هم تغییر کرده بود. موی سر و ابروهایش هم به کلی سوخته بود. نمیشد فهمید او کیست. دادش منم داداش. نوجوان به چهره جوان چشم دوخته بود. در چهره جوان هم سختی تلاش برای شناختن او دیده می شد. اسمت چیه؟ اسم مدرست چیه؟ سکون کیوزو هستم. دانش آموز سال اول شابه به مدرسه راهنمایی شماره یکی ایراشیما. جوان انگار حالت دفاعی گرفته باشد کمی خودش را عقب کشید. نه، تو کیوزو هستی؟ اما کیوزو پاتابه بسته بود. پیراهنی آبی با لکه سفید پوشیده بود که از یوکاتا درست شده بود. داداش، پاتابه هایم با موج انفجار کنده شد. لکه سفید رنگ باختند و محو شدند. وقتی نور پخ شد یک اینجوری شدند. داداش منو بشناس. پیراهنش سوراخ سوراخ شده بود. به نظر می جوان هنوز نمی تواند این واقعیت را قبول کند. اما تو، اگر تو کیوزو هستی، باید بند چرمیت یک نشانی ویژه داشته باشد. شاید منظورت این است داداش. نوجوان با دست های سوخته و از بین رفته سریع بند را درآورد و به جوان نشان داد. به نظر می رسید آن را از بند چرمی سبد مسافرتی یا ناگی درست کردند. در قسمت فلزی قهوهی آن، لولهی زمخت با همان رنگ صورت دایره چسبیده بود. کیوسو تو؟ صدای جوان گرفت. کنار نوجوان زانو زد و بند را است. خانم تاکهاشی و من از آن صحنه فاصله گرفتیم. هر دو نفرمان مقصدمان را معین کردیم و به سمتی برگشتیم که از آن آمده بودیم. من شک داشتم به شرکت بروم یا به خانه برگردم. زن هم شک داشت به کارخانه تحت مدیریتش برگردد یا به بازار برود. من که به خانه برمیگردم با اینکه توی شهر آتش سوزی شده اما اگر در امتداد خطوط راه آهن حرکت کنم فکر کنم بشود برگشت. من میروم بازار برای دریافت پول خواهند آمد. اگر پول به حسابشان نریزم جنس نخواهند فرستاد. در مورد آقای ایواشیتا در شعبه فروشتان چه می‌کنید؟ اگر آتش شود او برای حفظ فروشگاه تا سرحد مرگ تلاش خواهد کرد. میدانید که او اینجور آدمی است. در مورد آقای ایواشیتا چیکار باید بکنم؟ به هر حال اگر در بانک پول به حساب نریزم جنس فرستاده نخواهد شد. اما زمان تعطیلی تعطیل است. آیا در بانک یا در بازار کسی خواهد بود؟ باشد یا نباشد، نباید خطر کنم. روح تجارت همیشه هست. بسیار خوب. اینجا جدا میشویم. اگر شما به شرکت ما زدید بگویید امروز عصر. یا فرد و صبح در شرکت حاضر خواهم شد